سوره علق هم اولین سوره مکی هست البته آیات اولیش پنج آیه اولیش در اولین وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و وسلم بر آن حضرت نازل شدند در سوره اولا ربطش در سوره گذشته به خصوص سوره تین و سوره های گذشته موضوع توحید بود تبشیر بود تخویف بود تسلی بود همه موضوعات بود حال در این سوره الله تعالی می فرماید به تلاوت قرآن بپردازید اقرأ بسم ربک اللذی خلق به تلاوت قرآن به نام ربت به نام ربت, ربت که خالق تو هست به تلاوت مشغول باش این تلاوت باعث استقامت در توحید میشه. باعث چی میشه؟ باعث استقامت میشه از این استقامت حاصل میشه بدست مید اللہ عز و جل میفرماد اقرأ بسم ربک اللذی خلق بخان بنام ربت ان ربک الذي خلق آفریده خلق کرده این نعمت اول پروردگار است نعمت عام هست همه را خلق کرده هم إنسان را خلق کردي هم غير إنسان را خلق کردي دومي نعمات نعمات خاصة إما الإنسان خلق الإنسان من علق إنسان را أز علق آفري علق حالة دومي إنسان هست حالة أول نطفة هست خلق الإنسان من نطفة ثم من علقتي که لخت خون هست الله تعالی احوال مختلف انسان را یاد میشه اقرأ و ربک ال اکرم لذا بخان ای اقرأ ما یطلع علیک بعد از این وای هرچی بر تو تلاوت میشه هرچی بر تو خانده میشه همه را بخان و ربک ال اکرم و ربتو ترین هست ربتو مکرم ترین هست از همه بیشتر به شما لطف و جود دارد کریم هست اللذی علم بالقلم از جمله کرم نوازی او از جمله الطاف او و از جمله مهربانی او این هست که علم بالقلم قلم را تعلیم داد معلوم میشه که یکی از بزرگترین های پروردگار علم هست دانش هست که به انسان آموخته بقیه مخلوقات از علم محروم هستند از علم رسمی محروم هستند علمی به اندازه خودشون دارند به اندازه که الله عز و جل برای آنها لازم قرار داده علم دارند اینطور نیست حتی علماءی که گاهی تحقیق می و دنبال میکنند معتقدند بسیاری از علوم علوم که لازم هست برای حیوانات علوم که مربوط به صحت و سلامتی شون هست علوم که مربوط به نوع خوراک خوراکی شون هست فواید خوراکی حتی علم پزشکی حیوانات الله تعالی به اونها عطا فرموده به اونها عنایت فرموده حضرت قاری محمد طیب رحمت الله علی ایک جریانی نوشتن در بار فضیلت علم و بعد می که علم همه علمها خوب هست اما بہترین علم اون علمی هست که انسان معرفت خدا را داشته باشد بقیه علوم هم اینها خیر هستند اینها فوایدی دارند و برای انسان لازم هستند اما علم دین و علم شریعت این چیز دیگه هست و بعد نوشته که بعضی علوم دیگر را احساس میشه که بقیه حیوانت به اندازه خودشون دارند بعد میفرماید که من هندوستان خودشون مال هندوستان هستند در یک منطقه خیلی دور افتاده بیان فرمودند که من اونجا رفتم این هندوستان خودش یک غاری هست برای خودش هم سرزمینش خیلی وسیع است و هم انسان های بسیار زیادی دارد به اندازه 20 تا کشوری دیگه اون فقط جمعیت و زمین دارد. بهزن می‌فرماید که اونجا رفتیم یک روستایی که نزدیک جنگل بود اونجا هندوستان میمون زیاده می‌فرمایند که مردم شکایت داشتند که میمونها خیلی اذیتمون میکنن و شبها که ما می اینها میآیند گاهی تو خونه های ما دزدی میکنن کنند سفره ها را و هرچی که خوراکی ها هستند بر مثل همین گاهی ما شکایت داریم از گربه ها چینین وضعیتی داشتند بعد یکی از همون بزرگان روستا به ما گفت که ما یک روزی با هم مشوره کردیم که بیا اینها ها را مسموم بکنیم قضائی درست کنیم نانی درست کنیم که اینها بخورند و بمیرند همه تا ما از سرشون سر خلاص بشیم شب که میخوابی ناس تو جنگل میان تو خونها میاند رضا میگه که ما نانی درست کردیم نان همون نانی هندی کوچیکی مخصوص و این نان را آغشته کردیم با سم و میگه این نان را در همون محلی که محل ورود ممونها هست از جنگل اونجا گذاشتیم خودمون مخفی شدیم ببینیم که اینها چه تعدادی میخورند و چی میشه بالا خره جان میدم می میگه می می که ابتدا چند تا میمون آمند نان را دیدند که اینجا همه نان گذاشته متوجه شدند که این چیزی هست نان را گرفتن بو کردند ولی نخوردند. میگه که رفتن این معمون ها رفتن. اون طرف بعد میگه یک گروه بزرگی از میمونها ها آمد تقریبا هفتاد هشتاد تا بودند و بعضی از اینها گنده بودند بزرگتر بودند اینها آمدند وقتی که آمدند اینها اونها جلوتر شدند اونها این نان را گرفتند این نان هایی که ما درست کرده و گذاشته بودیم همه اینها نان را شکستند بو کردند و بعد هیچیکی از این نان نخورد. دوباره برگشتند. دوباره برگشتند. و بار سوم که آمدن یک جمعیت خیلی زیادی بود که داشتند. می آمدن. هر یکی با خودشون یک بوتهی داشتند که از تو جنگل آورده بودند. بوتهی داشتند. اون آوردند. اون که آوردند. همه این نانها رو شکستند و خوردند. بعد همون بوته را، همون سبزی را هم باش خوردند و برگشتند. هرچ از اینها هیچی کی نمرد بعد متوجه شدیم که اینها بلد بودن این همو پاد زهرش بود هر چی بود که اگر اون می خوردن دیگه مسموم شدند شد. و هیچ نمی نمیشد بعدن میگه ما به این نتیجه رسیدیم که خدای عزوجل به اینها به اندازه‌ی حفاظتشون علم داده و اونها برای صحت و سلامتی بدنشون یک مقداری به اندازه‌ی که لازم باشد اینها میدونند لذا الله تعالی به همه انسان ها به همه حیوانات علم داده اما علمی که به انسان داده علما بالقلم و بالخصوص معرفت خودش را این بزرگترین نعمت حاصل لذا به نام این رب اکرم کریم ترین رب که شما را همه نعمت ها داد بالخصوص این نعمت الذي علم بالقلم به نام اون رب بخوان علم الانسان ما لم يعلم بانسان آموخت یاد داد او چیزی که نمیدانیس هر چیزی که برای انسان مجهول بود و برای انسان نامفهوم بود الله عز و جل بانسان علمش کلا اما چقدر ناسپاست این انسان کلا به من حق هست کلا ان الانسان لیطغا همانا انسان تغیانگری میکند انسان سرکشی میکند چرا انسان سرکشی و تغیانگری میکند کند ار رآه استغنا خودش را مستغنی میبیند گاهی انسان میبیند که همه چیزش فوله همه چیزش برابر هست لذا خود شراب بی‌نیازمیداند سرکشی میکند ان الی ربک الرجعا اینجا تخویف است تخویف اخروی الله میفرماد همانا به سوی رب تو بازگشت است بازگشت به سوی پروردگار هست به سوی رب شما بر ارایت الذی ینها عبدا اذا صل حال زجر و سرزنش برای انسان معاند می گویند این آیات در ابو جهل هست که ابو جهل مانع رسول الله بود هر وقت نماز می نمیگذاشت در مطاف نماز بخواند در خانه کعبه می این نمازش تبلیغی هست گاهی نجاستها هر می آورد بر آن حضرت می انداخت گرچه مصداق اولش اگر ابو جهل باشد تمام ابو جهل ها مراد هستند تمام ابو جهل هایی که امروز بندگان خدا را نمی نماز بخونند بندگان خدا در بعضی بلاد غاچاغی نماز می خونند مخفیانه نماز می خونند با ترس و لرز نماز می خونند من می کنند جوانان را از رفتن به مساجد مساجد را قفل می کنند پلوم می کنند لذا حنوز زیاد هستن این ابو جعلها الله می فرماید ارائیت الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا آیا دیدی اون کسی که باز میدارد بندی مارا بندی خاص مارا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم را اذا صلی اللہ وقتی که نماز میخاند ارائیت انکان علی الہداء او امر بالتقوی آیا خبر بده اگر او بر ہدایت باشد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تو ای کسی که باز میدارید اگر فرض کن برای لحظه که این بر مسیر حق باشد و واقعا حق باشد تکلیف تو چی میشه که تو تکذیب میکنی او امر بی تقوا یا اگر امر میکند بی تقوا به خدا ترسی به دوری از شرک و کف تا این کذب و تولا خبر بده اگر اون معاند و اون بدبخت تکذیب میکند و پشت میدهد علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يرى آیا نمیدانند که خدا میبید خدا میبید و خدای از زواجل معاخذی و سخت هم معاخی می کند این تخویف اخراوی هست. کللالهعلمان تهه یعنی حقا اگر این انسان یا اینکه ان ردقیه هست به معنی حقا نیست ردقیه هست. یعنی هرگز چنان نیست که او فکر میکند که هر کاری بکند آزاد هست کسی باشکار کار ندارد نه لَإِلَّا مِيَنْتَهِي بالناصیه اگر باز نیاید از این حرکت شنیعش از این حرکت بیجاش لَنَصْفَعَنْ لَنَصْفَعَنْ اصلش از کنم که لام تأکید نون تأکید خفیفه است اما در رسم الخط با اون نون, نون ساکن به صورت تنوین نوشته میشه تلفظ که همون لنصفان نون تاکید خفیفه هست لنصفان به ناسیه ما میکشیم ناسیهش را ناسیه میگو این موهای پیشانی را موهای انسان بر چار قسم هستند به چار بخش تقسیم میشوند یک چارم به پشت راجحند یک چارمش به راض یک چارم به چپ یک چارم به طرفی پیشانی. لذا این قسمتی که موها به طرفی پیشانی راجح هست اینا میگن ناسیه. کسی را که بخواید ذلیل بکونی کنی مویش را گیریم موی قسمت جلو را او را کشی لذا الله می فرمایت کرد لا نصف هم ما به این موهای پیشانیش می گیریم اون نصیه یک کاذبه. اون پیشانیه که دروغ هست یعنی اون چهره دروغی نشرا میگیریم گیریم ناسیت کاذبت خاطئه اون ناسیه که هم صفتش کاذبه هست و هم خاطئه است در زندگی همیش خطا همیش تمرد همیش سرکشی فَلْيَدْعُنَا دِيَا بِذَرْ بخاند او هم نشینان خودش را هم مجلسی های خودش را اونهایی که باش هم نشینو هم جلسه بودند همیشه اونها را بخاند چون که او اونها همیشه وقتی در دارالندوه می نشستند افتخار و غرورشون همون مردم مجلسشون بود الله می فرماید سنت عزبانیا ما برای همه زبانیه یعنی اون داروغه مخصوص جهنم را فرا می خانیم. که همه را بگیرد و پرت کند در وسط جهنم زبانیه داروغه های جهنم و ملائکه عذاب را میگن کلا حقا لا تطعه از این انسان متمرد از این انسان سرکش اینی که از نماز جلوگیری میکنه از عبادت خدا جلوگیری میکنه او را اطاعت نکن از او خط نگیر تو ربت را اطاعت کن او را نادیده بگیر او را خدا میزان کمرش را میشکند لا تطعه وسجد وقت رب و سجده کن خدا را و قرب خدا حاصل کن سجده کن و قرب خدا حاصل کن معلوم میشه که کسی میخواهد به خدا نزدیک بشه با سجد سجده نزدیک میشه رسول الله صلی الله علیه و salam فرمودند نزدیکترین حالتی که بنده با ربش نزدیک میشه اون حالت حالت سجده است وقتی که به سجده افتادی احساس کن که من در نزدیکترین حالت هستم و خصوص این شبها که شما در شبهای ماه رمضان چهل بار توفیق سجده داری فقط در تراوی چهل بار گویا حالت چی داری اگر انسان این را استهزار داشته باشد بعدا این نماز تراوی را با یک حضور قلب می با یک عشق و شوق خاص هر وقتی که شبها به می روید احساس کنید که الان حالت اقرب الى الله است لذا با یک توجه خاصی تسبیح بگو سبحان ربی الالا و همچنین با یک خشوع خاص و خضوع خاصی دعا کن فقمنون اما سجود فجتهدو فی دعا فقمن ان يستجاب لكم او كما قال عليه الصلاه سزاوار است که در تجدید دعای شما اجابت بشه که خیلی با خدا نزدیک هستید بس وسط جو وقت قريب سجده کن و در سجده قرب خدا را حاصل کن